اأو الله شيطان الرجیف اسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله عبادانی و صلّ الله علیه و سلم رسول الله و آل فیلین الباقرین المحسومین الله الدائم صلّا علیه و سلم اللهم فرنا جميع المشردين رحمنا و احیاکنی یا ارحم الراحمین بعد درباری حرب لیبی اگر تا اوايان ان شاءالله منصفند که مبناستون من طولانی میشه بیشتر اون حدیث شناسی بریم کار کنیم حالا بحث در حدیثی رو در این از رسولو ختم بشه چون یه مباحثی به حدیث و تاریخ حدیث و متون ما و روایات ما هست و اون مباحث اگر اخوان بشه بحث نهی و غیر نهی ما من به مناسبت بحث نهی واجبه بحث میشیم. و الا تو جای دیگه بحث نشه طول زمان میاله بحثش فرصت می‌دیم ممکن. که سعی می‌خونیم به اصطلاح مباحث حدیثی و تقییدی بررسی کنیم و مقایسه‌ای نه به وجه کلیات و بس. علایوه در بعض از فصول یکی از ادله حرمت حلعلیه، روایات است که دیه در باره قرار داده. گفتن خب وجود دیه در حلعلیه کاشف از این که اون حرامه و الهی نباید دیه بر اون قرار داده باش. این در بعضی از کتبی که در حولدییت این دلیل آمده البته در بعضشان نیومد مردم استاد در مثالاتباه ننیوردد این فادل معاصل ما هم که دنبالشون رففتن نیوردن نیهند. برهای این بحث رقالت رو مردم استاد در اینجا نداره البته بحث دیه رو غیر از حال کتاب های متعارفی که در هست ماخصث جواهر خود مردم استاد هم دی در دیه رو به مناسبت به بحث دیات آوردن. اگر آقایی موید باشن جلد دوی مبانی تکمیرتون منحاج ایشان اونجا متعرض شدن توی این بحث مثال فقاهه به مناسب هر قلعه نایه اما به مناسب دیه یه لحیه و منگه سر توی جلد دو مبانی من منحاج در بحث دیان اونجا دارن و از خواب ما هم جواده و دیگه هم خب دارن دیگه این بحث قدیه نیه احد سنت هم دارن زیدی و چون به همین نسبت داده شده کده اسمایلی هم دارن در کتاب دارم و اسلام و این اصل بحث و اما نحوه استدلال قبل از اینکه که بحثشیم، بحث داشیم اجمالا یه نکات و عرض بکنم این دو نقطه قبل از ورود در بحث و تمهید اینکه چگونه میشه استدلال کرد به روایات وی ای در حقه لحیه به ما و اصلا موضوع واسه که در باب به احساس شهر و زهاب شهر یکی دوتا مقدمه اولا این است بین مسلمان ها هم به لحاظ صورت که صورت عمدور رو حساب کردن حتی بعضی مثل در این کتاب مصنف عبدالعزاب و از قول شره که مثلا کسی ریشی که خیلی دیگه و همدم کوتاه کرده تراشید این رسات آمدن رساس بکنه حالا گفته اگر فرض کنیم ریش آقا خیلی پرپشت بود این قابل انحساس پیشش کم بود مثلا با مثال مثلا ریشو فرض نرو بگی داد من در ریش او ده ده متر کعب سانتی متر موقعت هست 20 سانتی متر موقع بود ریش این جانی مثلا 15 سانتی یعنی شون بقیه که هم از موی سرشترا کم آمد اگر ایش این کمسر از ریشت رو این بقیه اون مساعد از موی سر رو مثلا به جای ریش از موی سر اضافه کنیم بعد از این یه بحث عمد بود یک بحث خطا هست در باقی مو و مجموعه یه ارواز ها بحث خطا شما سند از بحث یه قاعدی کلی هست که من الان قواهد کلی بحث قصاص کنیم اولا یه بحث کلی که در جایی که قصاص باشی دیگه نداریم این ما خلاف مشهور بین ما داریم یه بحث کلی اسلام من ارز کردم همیشه مواهز رو در اون مئیار اسلامی کلی بررسی کنیم از ده از وقایون سرمان اعتقاض شنیم علماشون اعتقادشون جایی که قصاصه اگر طرف قصاص رو نخواست دیگه دیگه و دقت کنید. زر انگشتی یکی طرف اندام غری و مثال داره. هیچ شناختی به میگم من حساس نمی گم کل انگشتو که بذارم انگشتم از درد من, من, من دیگه نمیگم. این خطا دیگه دیه نمیزن. این خطا میگه فقط شما حق حساس بدین و لزوم در حساسه اگر از حساس تنازل کردید دیگه دیه, دیه روشن شد؟ این یک خطای کلی است. در مقابل که ما داریم در روایات ما هست اشاره در روایات ما اگر قصاص نخواست دیه خاص میتونه بگیره این یک بحث بحث برون که این چه مقدار دیه میتونه بگیره یه قول هست این قوله در کل دنیا اسلام در مستر میکنه به مقدار دیه میتونه بگیره لکه ما داریم و قوله هم هستونی آمدارن چون این دومی دو شخصیه میتونه کمتر و بیشتر بگیره روشان شون مثلا یه یک انگوش حتایی اگر عمدن انگوشی تستوی بریم یا من حاضر رو بساس مکنم. اما باید سی سکتر شطور رو هم داری طرفان قبول کنم حاضر سی بدم. رو بگم پس یه اول اینه که آیا انتقال من وارد درست اینجا نیم خواهم چون مبارس دیات رو قساس کمتر مفتر میشه دعاوتو کلی رو که کلیت نافه یه بحثی از که اصولاً در موارد قساس دیه صریحه یا نه اونجا عمرش یدون رو بین عمرش یا قساس بکن یا یه تمام کلیتر کارش عرب بکن جواب که دیه گفتن نه نداره. دیه ندارد یه دم گفتن نه میتونه دیه بگی سؤال دو هم. این دیه باز همون دیه شرگی باشه یا اینه شخصیه چون حتی عفت باشیه این دستاعت هم شخصی بود روشنی میگه حالا که عفت کرده با اتفاق طرفه ممکن است این دیه بگیر بگه پنجز هم بخشنه. طرف میگی ممکنه که 5 و شسار میخواه تو اگر پنجز و شسار داری اگه انگوشی بگی یا پرسون بیه نفسی پرسون سخته شطوره با من دو هزارت شطورم یا عفت میکنم باید بعض دفتن نمیشه اگر مخواد عفت بکنید دیگه بسید همون یه موقع شرعی این ای به آمند در داره اون در جاهری که قساس ممکن نیست یعنی قساس اگر بنابرایش انجام بدن این معدیه به فساد و عضو و فساد دیگه میدارن مثلا در چشم زده چی نسته چشمیتش خراب کرده نسته دیگه چشمیتش میگینه خب نمیشه قصاص انجام داد. و در این درجه این قصاص ممکنی برگرده به دیگه یعنی دیگه. یکیش مورد خطا یا شبه قصاص شبه همدن بشینه یا هم شبه همده یکیشم هم مورد قصاص نیست این زمانت کلی رو به دو این یکی رابطه اینه در صرف اهل سنت آمده تو روایات ما نیامده اونا چون تفکر یاس و زوابه تو اینها دارن این مقناشون اینه آزتاً دیگه باید جایی باشه که منفعتی باشه اگر منافع اینی چی دیمی الان فرس اون طرف از اینی از فرس کنی کسی ها حاید زیر بقیر کسی مواشی دیشی حالا این موایدی رو مناسعی که غیر از این که همین رو کنه غیر از بیگون چیزه مثلا رو کنه خب این اصل و الان تو روایات ما نیست اما این اصل اهل سنده نده که قواز کدی که خیلی نافعه. اینو همون در یه ترسیس اصل کردن بیه که منفعتی از بین داره اما اگر منفعتی از بین نره آزتاً دیگه نداره اون چیزی نیست مثال بار این خاصه یه شما معتقد که شما شراشه‌ی موی مشه مارک درسته ولی اون میگه نه که اگه را میشه میاد اون مسئله دامیه است و اون خون با این که خون میاد نه خاصه واقعا ارزش همش بولی اون شد اینه یکی از قواعد قبلی خیلی مؤثره یکی از قواعد اینه چون این قاعده منشاء شده که اگه میگه ریشه بولی این مسئله از موی سر کی رو بوله بوله این مسئله از بین دراست؟ les autres forment از بین دیه نداره ن رفت کش اومد ان فیلمه این که ما در روایات داره و فتوا هم شده حالا معل اختلاف در موازش از این مسئله مو یک اختلاف شدیدی رو کل تفوای اسلام خلا روشن میشه با توضیحاتی که ما انجام میکنیم نیموکن بارد بحث دیگه بشن اونی که رب توی با نحنفی داره و یه مقدارم با حدیث شناسی و میراث ها آشنابشین که پید کار با اونها و چه شده از ها برخور کردن این هم دو شد پس یه بحث هم اون وقت در جایی که منافع نیست خوب درقت کنیم گفتن اگر سبب عذیت یه آزاری میتونه تغییر بکنه دیگه منافع والاكي چی میش میفهمی؟ دیگه هم خب این بربر اما خب من من تجارت میکردم ولی خب خب میگم خودش دو روز مثلا زنده میموندن یا یکیشی ای مثلا این دو روز تو یا مثلا پنج شو بوسن میگه من با بوسن که چند بار نرخ متوسط این بود یک دو تا هفته یا 80 بوسن بیشتر متعارف رو 80 بود ولی سرش همینه که میگه در پنج شو تا فان پنج شش تو میشه چی؟ میشه چه کبوسانی؟ پنج شش تو میشه چه کبوس؟ این بیاک پنج شش تو یه بوسان این اون دمان بود که هر بوشتو که با پنج شش بود حالا با این ویش آغاز کردی تو میشه چه تو گوسان بی تأذیر؟ که از گذره نه من خود زیر بنا هرگز تأثیر نکنی اسلام و نفی ثبوت تو این مسئله مو توی تو موزن از آستایی و من چیز روستی نهر یعنی نفی ثبوت که اصلا کل بحث بحثی دیاد احیالی به کلی داره من الان بارده بحث میشم من خیلی بحث لطیفی هم, هم پیش ما خیلی لطیف هم پیش اهل سنن من کناران هم کردم بعد از سال هدیعی که به قول تبدیل شد به تهماس فرمان مدنیان کبجوم فرمان می‌بینیم امروز سال هدیعه که سال ششم بود از سال هفتم بروه بروه عرب هم میام ولی و اشاره مختلف و مسلمان میشوند. و ادیه از شوند و فیلندر از شوند فیلندر از این زمانی ای در تاریخ اسلامی خیلی متأثره کوپی کرده که مبادی خیلی از شوند فیلندر از سال هفتم خود نمیاد ما و سنیا فرمان میکنه بعد ایشون انذار ما انزاج بده میاد در رأسای اشای اگر چیزی که خیلی انزاج تو خیلی مساله مهمیه تو اقتصاد همین مسئله که الان مطرح هستین ای آیا میشی یک نفر مثلا یک زمین مثلا 2 میلیون هکتاری رو بهش بدین این کار رو بهnabla به اسم اقتصاد در لغت عربی اقتصاد یعنی یک تکه از زمین که جدا بعد غیر نظام شو نظام فی اورلیش که مثلا چند روستا مثلا زمین ها با احتیاج شما هست. نظام ورثه اورلیش ما فی در عربی چندش از اختیاری اختیاری یعنی که باشه اصل کلمش اینه خب خود بنوارتای دنیادا مثلا لایتاش گو این وادی و فلان مال منم مال تو این خودش یه اقتصادی که از اساس بسیار مهم اقتصاد اصلا اینکه از ریشه اقتصاد دنیای روزه همینه. میشه دولتی یک نفر دو میلیون هکتار زنی بده؟ نه آباد کرد نه کاری کرده تمام این سنن معروفهی که هست یه منظاش هم بیاده این سنن ای که هست مال سال هفت به بعده که یکی از این سنن بسیار معروف ابی بکر نه امراد نه هزنه تیخنبر نامه این که از مهمترین نوشتارهای بوده که از زمان تیخنبر بوده یه حال شمیده خیلی طولانی من نموه توی این نوشتار یه مقدار زیادی از دیات کرد، از همین دیه زن نصف و دیه مرد تو همین نوشتاره چون در بار آقای مقدارش دیه این یه خورصات هم مرد. در بار هر جامعه زیادی و هم نلاحظه یکون بکست بکنید این سر دنیای اسراب رو برای تو من توضیح بدن اون جایی که دیه زن نصف و دیه مرد تو همین کتاب آمده تو این نوشتار آمده. وزیعتای مرعته الان نصر نیده و جمعی که توضیحی داره حالا این در کل دنیا اسلام در دنیا شیعه کتاب دیات ما یه حسابی داره مخصوصا شخصی بوده که دکتر بوده پدش بوده به اصلاح موزه ما چون پیزش بوده انواع جراحات رو مثل به بوده ارزیابی بکنه این ابا عمرم متطبر این متطبر این پیزش یه شرقی داره که من ارام وازون شرق میم تولانیه و جاشمینی فیلودم هم دلیل اشاره عابره یه مقدار ویاریان از دیاس و غیر را ذکر کردن کتابی بود به و و این کتاب باید بین سالهای مثلا 37 تا چهه در کوفه تدوین شده باشه تا انتشارش مثلا فرض سن 37 تا شخص مثلا قدیمی ترین کتاب در دنیای اسلام مبردنه. نه سرمی داره نشید داری شون شون نداره تنها کتاب مبذب در دنیا اسلام اینه چند بارم توزید دادن این کتاب مخصوصا در اوال قرن دوم خیلی شهرت گیره اصلا معروض رو به کتاب علیه که زیدیه ها به این کتاب مراجعه میکنه سرمیه ها هم من به شما نرس کردن هم کتاب علیه نرس میکنه الان پیش ما نیست باشه هست به همین کتاب علیه. علمای ما هم عرض کردم تا حدود زمان امام باخر اعتناعی به هده از زمان امام سادس پیگی پیگیر نشدن من توضیحات رو چند باره عرض کردم و نمیدونیم چرا؟ درست الان برای من روشن نیست یعنی مثلا زمان امام سادس امام افتاعتی از اون کتاب رو به زراغه محمده بزرگان حساب نفرند چرا شد نمیدونیم آیا کتاب مشبه بوده آیا کتاب یک مقدارشو تقییه صادر شده آیا کتاب احکام ولایی بوده او بکنه چون در احکام حکومتی هفتش عنصر ممکنی دخالت بکنه نه یک که الان چون مقدمات رو برای که او از شما نیمتونی از یک کتابیش هفتش عنصر. مثل یک قصه رو پیش قاضی برده این قصه ممکنه هفتش انصر بوده یک انصرش این بوده که موشم از نین رفته چیزی دیگه هم توش بوده ما نمیتونیم بونی که در اونجا مده ربول بکنیم چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا دیگه؟ مثلا همین من میگه آب دابوسر چی خیلی خیلی مواش رفت خب میدونی شما آب دابوسر آدم بریدن؟ اول اینسان استاده باشه خب بدن آدم بسیده مگر کلش هم بوده مثلا هم فقط گویتری بازه مو در معرضه خطر هست پوست صورت هست گوست سر هست گوش هست, چشم هست, لب هست. وقتی خواهد میگیه برای صفحه بود. خب در مو مثلا یه کامله خب شاید اهل بیت این رو واضی نریردن این نکته بوده که این یه قصه خارجی است خودت فکر بکن ما دسته خارجی البته خیلی ظرافت نقطه این قابش روی سر شیخ ده یعنی که دیگی بوده دیگی قضا بوده شو شده وقتی که سر آدم سرآدم هست، آب گوش دادم که حالت شبه کنی؟ نمیتونیم ما از این قصه ای که از علی در یک دیگ جاه سرآدم بگیم در موی ریشه آدم اگر بهوران فرض کنیم مثلا اینکه یه چون از علی اون ممکنه عناصر دیگی هم دقت فرمایید چی میخوام عرض بکنم؟ عناصر دیگی هم توی هم کرد. این به یه است اینجوری من بارد وارد بشیم که بحث ما طولانیه من فقط اشاره کاره یا آورم این دو تا مطلب پس این یا سوم بود از پیغمبر اکرم در اغلب این موارد نقل نشده تو اون نقلایی که ما داریم از اهل سنت و ای که ما داریم که ما در اختیار ما هست از پیغمبر اکرم در خصوص مو چه موی سر چه موی ریش نقل نشده اونی که ما الان داریم خوب دقت بکنید از پیغمبر این مسئله دیگه یه مسئله دیگه هم چون تو بحث از روایتش اومده دقت بکنید این یکی از موارد یه اذن یه قاضی کجوری خدمتونه عرض بکنه اگر یک به است مذهبی در یک روایت با اذن آمد یه قاضی که سنی هم غالبا قبول دارن ناظر قبولی اون این است که اگر اذنی در روایت آمد اصل اولی توثیقی بودن و تعبده خرجو نمیشه حالا همون مثال معروف در باب امین گفتم تا یک سال صبر بکن اگر تواغنی اون وقت میتونه زن حقا فرص دار. اون این وقتی هست این یک سال داره الان ترنگات علمی خیلی راحت میشه انجام داد خیلی راحت و روشنه که این مرد ناتوانی جنسی داره خیلی راحت میدونه مشکل نداره که همه از اون طرف یعنی چون تو راحت یک سال تر بازه یعنی یک برنامه ای که اگر یک عدد معین خیلی خاص باشه قواعد کلی فقه سنیان گره اما تابع ابو حنیفه که خیلی قاضی ریاست اونا هم قاضی میشن ناظر اونا اونا هم قاضیشون میگن اگر عدد آمد صورت تو روایة توقیفیه مثلا به حساب نمیاد میگه توقیفیه پنجا ده نمیشه عدد که آمد صورت روایة این جزئی که از قواعد ذکر عدد در روایت همیشه توقیفیه حالا اگر ما یک سال تیور خواهدی میشه تقریفی حالا از اون برم یک نکته اجتماعی هست یک نکته غرفی گفته شده که همی که فرموندن یک سال چون ممکنه هر ناتبانه جنسیش ناتبانه جنسیش واقعی نباشه ممکنه در یک قصد سال ناتوان باشه در باهار ناتبان باشه تو تابستان توانایی درسته تو تابستان ناتبان باشه تو زمستان. سره یک سال همو این جهره اگر این نقطه درست باشه الان یک سال شنتی میشه ما بنابراین خوب این شاخ تازه خوب دقت بکنید خاص یعنی همین نستی که آمده الان که تا عمر نوشتن دیگه الان نوشتن این یک سال سر اگر ما این نقطه اجتماعی رو تحویلیم که این تاخیر سنه یک سال این روی این بود که ثابت بشه واقعا این مرنات همانی داره چون امام بخواهم بفهموند ما ممکن است این مرد در زنستان توانی داره اما در باهاب میتونه تو پاییز میتونه تو تابستان میتونه چون فصول مختلف هست و خواص خصول عوض میشه این که خواص خصول عوض میشه در سال شمسی در سال قمره که عوض میشه ماه به ماه روید قمر رو ماه ما روید قمر لورد این نداره که اونی که دقیق این ظرافت هایی که در فقه میتونه خیلی کارگوشا باشه اگر ما تحلیل که مراد احراز کفئی نا توانایی جسمی است دیگه از اون طور تو منهاج هست یک سال دیگه یعنی خب الان با پیشرفت های علمی کاملا میتونن تمام خواست جهدی که جذب شده این ده سال هم دمونه عوض نمیشه تداوجی شداوجی این مقدار توانش یک تکلیف در فقه می در فقه اون رو تعیین می‌کنه اگر پس ما بگیم رو در بگیم ما با تحقیل علمه اگر نینی توانیم یعنی اون یک سال رو تعبد بزنیم در مقام علم نه تو واقع اگر نمیگاهی دشتار سبب کنیم یعنی همون قاعده کنیم در اصول ظاهری اصلا یه قاعده است که اصول دائما محدودن به این بخلاق از حکم ظاهری دائما محدود به این بخلاق این که میگه کلوش ابن نبوی پسا تعلمان نه و قبران این تعبض میزه این کلی قادر کلی بیز هر حکم ظاهری حکم ظاهری که ابایت از حکمی که در ضرب جمع قرار داده میشه هر حکم ظاهری که جمع بشه طبیعتاً اینطور بحث این بست آمونیه هر حکم ظاهری که جمع میشه در به جمع این محدود است به علم و بخلاف با علم و بخلاف بنداشته میشه این قایده کلی بگه دو, دو خواه پس بنابراین یه بحثی ما داریم در اده از روایات که تا یک سال صبر بکنه تو روایات من نمخوام بازو بحث بشم تو روایات سند داری که اگه گوشش کار نکرد ما میخوام یاد جلسنه این مطلب توی سنت پیغمبرم هم در اده از مبارد چون نمخوام بازم من اصلا باقت اشاره بگمیم که اگر اینجا دیدی این سابر داری تو روایات اهل سنت داره یسته نام به عنا یعنی استفعال باب استفعال یعنی صبر کردن تأنی کردن باب استفعال تأنی تا یک سال صبر بکنه پس این یک مطلب دقت بکنید یک چیز دیگه ای هم در سنت پیغمبر آمده من فعلا که رواتومان از یعنی استفصال نگردم هم که تو ذهن هست اما ارزش ندارم چون بحث بحث تشاصدیه دیگه مثلا 20 خورده حساب پیش بر خریم اونیکه الان تو ذهن منه اما سنی ها داره به نظرم الان هم دادگاه ها امدن این کار میکنه. یه صبر دیگه هم هست توی بحث دیا تو اینا چون ممکن است یک مرضی که الان پیدا بشه یک که الان پیدا بشه این ادامه داشته باشه اون دیگه مقیده به سنه نیست سر نظرم تا بیده این جوی به کجا میکشه اون وقتی رو تعیین بکنم خب به قطع این اصلشه سنت نیست از پیغم دمن الان چون میگم نسبتی نه به رابطشی، طور و تحریص نمی‌بینم. شخصی شخص یه زده او پای شخص دیگری یا یه کاری شد، می‌فهمی شد. امده. پس اون سنگ این بعدش همیشه کار با ترکیب است. این هم سنگ سعی پای تر اون آقایی که زدید به پایشون جانی کشته پا شد، شد. این آقای رو از باید این کار کرده، این این آمد قساب کرد بعد از بده که پای جانی خوب شد اما این آقا پای شم شد. شد این مزیدیانه این شم شد خوب نسته پای اون جانی که قساب کرد بود، نظر مختصمه اون پای شم شد آنیش پرنگو یارستو به پای من شم شد این که با قسابگو پای شم شد پرنگو من داری کنسه سبر میکن خب اگه سبر میکنی تو میمیندیجه به کجا بکشه تو صبر نکردی، عجله کردی این یه برسی که بعد از جور رو باید صبر کرد کوب روشن شد؟ چون ما توی مو همداری که تا یک سال صبرتون کا شب می شودد. آیا سنه از جلون سرنه از قسم اوله؟ یا این سنه از جلون از قسم دومه؟ چون این آب جیش رو صورت شیخه بوده امام می صبر سبر بکنیم تا این مو یعنی به عبارت مخواه که دو ماه هم بودش یه مرزاق مو در آمد امام میگه نه یه مرزاق کافی نیست ببینیم موی او کاملا طویهی میشه یا نیمیشه اون زفت بکنیم باید به دنبالیمی بیوکسیم چه موی او پس این از جلب اون سنه این از جلب اون یک س این باید میشیابی بشه یه تعبده دو تعبده نیم این به این معنی سبر بکنه این تعبده نیم مونی این کام چون در اصلا هم در سال دو ماه یک کمیمون در بیاد یا رشت نکنه یا در یک مساحت کم هید به تراشه تبر بکنه هید به تراشه تابده نیم این حده اختاش یک ساله حده اختاشی که تبر خوب موسکو آزمایش پیاز انجام بدن. حد اقصایی که صرف بشه 2 مثلا یک ساله این ظرافت های بحث رو خوب دقت بفرمایید این هم نقطه دیگری که گاهی تو اجزه از روایات سر است من خیلی مختصر چندین عرض کردم بیا بحث چون بحثی در فی تو بیا برای آشنایی مثلا لاعقل آشنا بشین با راز و همزه قضیه خیلی نافه نقطه سروا بیشه هم از مجموعه اقواله مجموعه اقوال است که خودمو با از کلمتون از فیغم برای نحرونه نکردن. مجموعه اقوال است که اصلا خودمون چیزی نداره از اون طرف یک قائلیسی در قوایات ما آمده هر چیزی که در بدن یکی باشه یک کامله خب رویش در بدن یکی یک کامل یک قاردان اصحاب ما خصوص اصحاب اورده این یک نوکتی ای. یک نوکتی هست ای که ایده ای گفتن مثلا ایده عطاونا تفصیل قابل شدن بین موی سر و ریش تفصیل قابل شدن بین این دو تا موی زیره رفت چون یک موی زیره گفتین تفصیل قابل شدن در موی سر بین موی سر و چون یک جمال باشه موی سر مر او به قطعه کنیم مونی سر زن سرا چی؟ یا مونی سر مرد نتونیم شید؟ من اون نخاط فرمی بود به دیگه هم قادم شدن که از بسید مالکی ها و شافعی ها قادم شدن به این که حکومت بود حد ندارد از ابو حنیفه نعرف داده احمد نهنده که داده و اونم بیه کامل شبیه ما سر این که ابو حنیفه و این ابو نقطه احمد نحمد هم که خوب داره تو اونها انه علیه نرده که قضا علیه به دیه دربا به هم علیه دربا به موی و سر این داره که این رو از زیده ثابت هم نرده کرده اون شد مثل احمد نحمد و میگن اگر صحابی کسی گفت چون صحابی به رعی خودش که انرسول و انرسولان ها اون کافی این یک ممنون یه ممنونی که هست که نه صحابی به تنهایی کافی نیست اگر دو تا از صحابی گفتن ولن یعرفت مخالفان میشه اجماع صحابی اون به خود این دو تا ممنونی سوم ممنونی ابو حنیفه و از درواز ما داره که ابو حنیفه مخالفان ما علی مراد اینه چون ابو حنیفه از اشکالاتی که سنیا به ابو حنیف دارن به آرار صحابی اعتماد نداشت و اگر صحابه از رسول الله نرمی کنن اهلا مقبول سهلا مقابل میکنن. اگر صحابه فتمای خودش این هم رجال و رحمن رجال فهمه صحابه من فکر رایی اگر صحابه روی استدلال و استظهار و عموات کتاب و از یک سنتی استظهار کردن یا خیاس کردن خب من خیاس رو کنن تمثل به عموات کنم عموات بود. <تصفيق> به عموات گفتن تمثل می میشه این دیگه من مغلد اونا نیستم اینی ای که در روایت ما داره که مثلا به نظر لحن الله داره با همینی کان, کان علیان یهول کلا, کلا این حرف درست این نقل در ما در روایت ما درسته لیکن اختصاص به این نداره عمر را همی جروی بگم عبو پر را همی جروی بگم این کلام روشن شد این یک چیزی نیست که احنافت ابو حنیفه اعتقادشون بود این که کانه علی و نیهو یعنی اگر شما رأی علی بن ابی طالب هم رجا ندارجات اگر علی بن ابی طالب از رسول الله نقل میکنه بعد سمع و اطاعت توش بحثانده از کلم تو این ماجرا هم اهل سنت نغلی از امیرالمؤمنین چنان که در شعر دیگه کامل ادعی فرام قبول نکرده و سن درمی به حکومت این چند تا دو طرح ازده هم آجه هیچی نیست حکومت هم نیست آنه هیچی ای که بزید حتی اگر طبع عذیب شده به مردار عذیب و اله با عنوان هیچ هیچی نیست حتی حکومت هم نیست حکومت ازده هم اون که حاکم تشکیز میگه مثلا دو بیشت با مزاره منبال مثال پنجتو تو دیگه که ستو شطوره ابن هرم از این هاست ابن حضر. تماسو میکنه به اطلاق اون حدیث معروفی دیگه در اسیا توجه پیغمبر ایم نباید برای علام و آن و آملاکم و که یوم کم یوم فی حرام کم پیغمبر هم بشره هم حوز هم مال هم ما حرام کرده ما چرا دیگه از طرف خود دیگه نباید به چه نکته؟ آخه مال از اصل بدونی که لیلی از پیغمبر بیاد چون اینا پس ما که آخه عاری داره. از دیگه یک کامل دگیریم که سر تا شداره تا بخوند تا هیچی درمو هیچی نیست مگردی که مساله تحمدی تو با ایزایی به نقدار ایزای مقمن مثلا با تو دوشی بسوزنه مثلا یه رو زندانش مندازه کروشت شد اما خودمو به عنوانمو عشیرات چون قائله اونها تاکید کردن که مو جزء منافع بدن نیست شم نیست زغب نیست جمال هست ها لذا اینش به خاطر چون جماله همین نوشیون این یک نوشی مخاطر بیجا میشه نوشی اون اصلا بده بله، موی سر همینطوره اما موی ریش چون حرامه از اینجا یک جمال نیست پس سر ترسو که دروازه دیه در له اینه نو از روایت استزها گفت یک فرق بین نمونه سرور میشه بذاری اما اگه گفتی موی خان یه موی ایشان میشه فاش نکته اون موی سر که حرام نشه نشه چه خبردی ملازمه یهو هورتا چی میشه حالا چون مثلا بگیم شال که معنی ها سازه اون ملازمه هست اشکال ملازمه اما پس نکته روشن شو خیلی بحث من بخاطر مقدماتو گفتم در یک درستی به معنای حسی چون منافع این یک در نیش جمال هست از تو در, در بنیه سرم هست اما بگیم نسبت در این مجموعه روازی در خورت وقت شبهه این جمالش مال زن مال مرد نیست به قصد دارید پس باید بگیم منافع نیست جمال همه خودش نقصه حرمت باشه به این توی روایات ما هیچ اشعاری به این جهد نظره این دو تو مقدمه اول اند اما حالا دوستم اول سر روایه هست چون بحث ما بحث دیه نیست وارد بحث فقیش نمیشید از همون قدیم هم اصحاب ما اختلاف داشن من فقط مثلا مبنای آقا خویه چونی شد خوبی آقا خویه هر روایه دیگه قبول داده که همون میارم مطلب رو هم میارم دیگه کار مداری کار پتواه اصحاب بر چی از بر چی؟ این در کتاب بصائر شده باید هست در همون جلد نونزه مسائل چاپ و مجموعه های اثر از این جلد نونزه و ها مجموعه های ربانی حاشیه نداره یعنی آدی از این طرف که چیزی حاشیه اونجا حواشی داره که معروض شده به چاپ های را نداره حاشیه نداره چون این عبارتو بیشتر در این کتاب جامال احادیث جلد اخیر جمال احادیث چه از این احادیث افواب دیات اعضا در خطب اهل سنت هم هست و باب هیشه افواب دیات اعضا در جامال احادیث یه نکته ایران من اینجا بکنم چون بعد میخونم اگر آلوم هایی بودم برای بشه بکنم از منم من سر بشن من نیمونم در این کتاب جامال احادیث کاش یه جا آورده بود ایشون در یه جایی دیگه هم بیه آورده راجع به مو این باب بود، در همین جامعال و در همین جبده که من انا هستم در باب چهار اوگرده ایشون در دو باب اوگرده باب هیچده و باب چهار این باب چهار سفر چهار سفره اونجا هم ایشون اوگرده اون البته بیشتر مال شعر زن اونجا ربادم از بهایاتی من جی محوک رباد نمیشن و با Initiative خودم همون داره من اون درصور رو کجام بدن دینی که به ما برگرده و در این دو بار عبارت Turnbullار رویشون نعبوده با که مخیل عبارت Turnbullار بیاره من خودم چونهاщی خودم ابردم Turnbullار هم اینو داره Turnbullвар روزا هم اینو داره و انشالله بعد از روایات من عبارت فروروزار میخوام چون یه این داره که در حیجواتی نیامده اون فنون نکات فنی تاریخی لطیف رو من انشالله شاء الله به لحاظ هرشناسی میگن که حالا ذهنه خودمون جنبهی شب درست ان یه کارتش... خب هم بحث انشالله حدیث اول بابنی که حدیثم اونده باشیم که همش از خارج صحبت بکرده باشیم این حدیث سو مرحوم کولیمی او برده همینه از مراستای علمی سهل ابن زیاد از میراستای علمی سهل ابن زیادی که افتران سهل به هر حال مواسلشون احمد اشعری مهادت دوزه که شهر علیه به کز و قلوب کذب. صحیح کرده و قلوب ها که انصافا خیلی سنگینه شاهزه به کزه خیلی سن درست به نظر ما مراد ایشان هست چیز دیگریه دیگر. من اینه شهردازه ما اینجا نیست اما به هر حال ایشان جز خط و اما گلوب و عوالی ایشان چون ما یه گلوب و عوالی که در خطیهیست یه گلوب عملی داریم که نماز نیخونده نه اون عوالی ایشان ثابته نه نماز نسته جیوب الله احتمالا اینو سیاسی و قضایی اجتماعی داشته چون از قوم هم که بیرونش کرده مالا همین نبنه زن مالا قضایه سیاسی دیگه ها رو بارد اون بحثاش نشید چون اون بحث دیگریه و اما دروغ نه شن اجنده بله یه دروغ به معنای دیگه میرات های سرچا خیلی نقیل نبوده و ما رو در احمد هم از هم نبینه چون ارسال هم سهل این زیاد هم احمد هر دو از قوم یا از ری کوفه به کوفه میرات های کو احمد فوق عاده دقیقه و دقیقه احمد داره میگه این که سهنگه از وشاق پس کنم مثال این از وشاق نشیده این اصلا کتاب از بازار خریده کتاب وشاق از نیست و توضیح داره این این قاده نیست چون این مبنا بوده این اصلا مبنا بوده که ما به جاده میتونیم نیستیم نقل بکنیم این قاده نیست و از نظر که شیعه این رو تا تقدیم کنه ظریف کردن در حدیث نه ضعیف این ادعای علما نشون ضعیف کردن حدیث تضعیف نیست ضعیف کردن تقدیره درست این نکته ضعیف کردن فله حدیث مبانی حدیث ضعیفه نه اینکه خودش ضعیف باشه اعتقاد به چیز بیار که احمد میگه مراد اینه حالا من واضی بحث نمیشم که این بحث در چیزیه ببینید در شیعیه است من نیم خواب آگه محمد ابن حسن ابن شمون این از خط گلوب ده. ده این احمد بصری، این از اجلا خط گلوب ده این خیلی به این ما در خط بسره از اف از این نداریم از اف از این که ای بهش با و کزا و اینا ما در خط بصره در خط کوفه هم مثلا عدعب از محمد محلی سیرفی عبو نداریم در خط بسره هم از این و عبدالله مرد رحمان عصم نداریم دقیق می کنیم این خط اصلا حدیث رفته رو بسره از ابن شمون و و رفته رو بسره به عبارت دیگر. احادیث ما چیزی نزدیک 90 درصدش توبید در کوفه است 80 در, در کوفه ما خیلی ضعیفه خیلی نسبتش پایین این حدیث تو کوفه ها در در و دربی در بکره می خوادن خط رو قولو گذاشه انگار شما سنن را خیلی تاریخی شما رو میکنه با سیر تاریخی